به نام خداوند بخشنده مهربان از تو درباره مارهای غنیمت میپرسند بگو مارهاگ غنیمت از آن خدا و رسول اوست بنابر آن از خدا بترسید روابط ذات البینی خویش را اصلاح کنید و خدا و رسول او را اطاعت نمایید اگر ایمان دارید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 که چون خداوند یاد شود و آجات او برایشان خوانده شود، دلهایشان ترشار از سرط خدا می شود. این آجات ها ایمانشان را نیرو منتر می و بر پروردگار خود توکل می نموکند الَّذِينَ يقيمون الصَّلَاةَ وَمِمَّا آنهایی که نماز را به تمام و کمال برپا می‌دارند و آنچه به ایشان روزی دادیم خرج می‌کنند. قُلَائکُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ هم ایشانند مسلمان راستین برای ایشان در نزد پروردگارشان در است و آمرزشی و رودی کریمانه کما اخرجك ربك من بيتك بالحج وان فريقا من که پروردگارت تو را از خانه تو به حق بیرون کرد درچه گروهی از مسلمانان از آن واقعا ناخشنود بودند یجادلونک فالحق بعدما تبینک و حقیقتی که آشکارا شده بود مجادله کردند تو گویی که ایشان به سوی مرگ ساق داده میشدند و ایشان نمی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَرَدُّونَ إِلَى غیر ذات الشوکت تکون لکم و یعید الله ان یحفق الحق بکلمات و یقط عداب والکافی و بیاد آر زمان را که خدا بند به شما بعده کرد که یکی از دو گروه دشمن از آن شما، شما آرزو کردید که گروه بدون سلاح از آن شما کردد اما خدا میخواست تا حق را به سخنان خیش به ثبوت رساند و ریشه کفار را بکند و ولو كره تا حق را به ثبوت رساند و باطل را نابود کند هر هرچند مجرمان ناخشنود شوند از دستهیتون ربکم فاستجاب لکم امنی نمیدکون بیالپ من الملائکت محبیفین بخاطر بیاورید زمانی را که از شدت ناراحتی در میدان بدر از پرورگارتان تقاضای کمک می کردید و اون تقاضای شما را پذیرافت و گفت من شما را با یک هزار از پرشتگانی که واشتت سر هم فرود می‌آجند یاری می‌کنم وما جعل الله الا بصره لتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم بل خدوند این راستنها سنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد بگر پیروزی جز از طرف خدا نیست خدا بند تبانا و حکیم است اذی وشنیکم و ات منه و ینزل و من السماء مالی و عنكم علي قلوبكم به بخاطر بیاورید هنگامی را که خواب صبحی که موجی آرامش از نهجه خدا بود شما را فرو گرفت و آبی از آسمان برای شما فرو فرستاد تا با آن شما را پاک و فلیدی شیطان را از شما دور سادد و دلهای شما را محکم فَغَمْهُ هَارَ وَعَنْ ثَابِتٌ دَارَتْ إِذْ نُوحِيَ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعكُمْ فَتَثْبِتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّبَّ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَالظِّيَبُ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ بخاطر بیاورید موقعی را که پروردگارد و فرشتگان بحثیه کرد من با شما هستم کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم بدارید و دودی در دلهای کافران ترس و وحشت میابگنم ضربه ها را بر بالاتر از گردن بر سرهای دشمنان فرود آرید و دست و پاگ آنها را از کار بیندازید ذالی <تصفيق> که لهم الله و الله فإن الله جدید الله این بخاطر خسر است که آنها با خدا و پایان دشمنی برسیدند و هر با خدا و پیانبرش دشمنی کند که شدیدی میبیند خداوند شدید العقاب است ذلكم فذلكم وان للكافرين عذابا این مجازات دنیا را بچشید و برای کافران مجازات آتش در جهان دیگر خواهد بود یا ای الذين ای کسانی که ایمان آبرتایید هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شدید با انها پاش نکنید ذبوه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقرى بغضب من الله فقرى بغضب من الله وما وجد أن المصير با هر هرکس در آن هنگام به آنها پاش کند مگر در صورتی که هدفش کنارگیری از میدان برای حمله مجدد و یا به با قصد پیوستن به گروهی از مجاهدان بوده باشد چنین کسی گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و معبای او جهنم با چه بعد جایگاهی ترم تقتلهم ولا تن الله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رما وليبلی المؤمنین منه بلاءا حسنا ان الله سمیع علم این شما نبودید که آنها ها را کشتید بلکه خداوند آن ها را کشت و این تو نبودی ای پانبر که خاک و ریگ به صورت آنها ها پاشیدی بلکه خدا پاشید و خدا میخواست مؤمنان را به این وسیله به خوبی بیازماید خداوند خدابند، شنبا و داناست. ذالکم و ان الله موهن سرنوشت مؤمنان و کافران همان بود که دیدید و خداوند نقشه های کافران را صاف میکند. إن تستفتحوا فقد جاءتهم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عروا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أكبر شما خواهون الخاص بفيروا به سراغ شما آمد و اگر از مخالفت خودداری کنید برای شما بهتر است و با اگر باز گردید ما هم باز خواهیم کشت و گروه شما هر هرچند زیاد باشند شما را بینیاز از یاری خدا نخواهد کرد و خداوند با مؤمنان است یا <تصفيق> ایوالذین الله ای کتابی که من آبسته اید، اطاعت خدا و پیامبرش را کنید، با سرپیچی در حالی که سخنان او را می ولا كالذين قالوا يسمعون، و همانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم. ولی در حقیقت نمی شنیدند این نتر رد دواب عند الله صم البکم الذین لا یعطیلون بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کرد و لارده هستند که اندیشه نمی کنند وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ معرضون اگر خدا بند در آنها میدانست، هر سه حق را به گوش آنها می رسانید ولی با این حالی که دارند اگر حق را به گوش آنها برساند سرپیچی کرده و روگردان میشوند yeah. تجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحییكم وعلهو ان الله حول بین المرء و قلبه و اندهو الی تحشرون ای کسانی که ایمان آبرتیید دعوت خدا و را اجابت کنید هنگامی که شما را بسوی چیز که موجی ی است و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حایل می شود و اینکه که همه شما نزد او در قیامت اجتماع خواهید کرد بنام خداوند انداز محبان نهایت باره و تقوب ازنتا لا تصیب من الذین ظلموا منكم خوافت ظلموا ان الله جدید العقاب بترسيد كتنها بستم داران با از فتنهی بترسید که تنها به ستمگاران شما نمی رسد و بدانید که بیگمان خداوند سخت عذاب کننده فالقروا إذ إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتغطبكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره وردقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بها نقام رضا كدر آبريد زمين دسته کوچک و ناسبانی بودید از این می ترسیدید که مردم شما را برو باکند و خدا شما را جای داد و بیاری خود تعیید کرد و شما را از چیزهای پاکیزه روزی داد تا باشد که سپاس گذار شوید. یا <تصفيق> ای مؤمنان و خدا و رسول خیانت مکنید به هم به امانت های خیش دیده و دانسته خیانت مورزید و انما اموالكم کم و فتنه و ان الله عنده اجر عظیم و بدانید که دارای آگاهی شما و اولاد شما وسیله آزمونش اند و به شک خداوند است که نزد او مزد بزرگ باشد یا الا الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سيئاتكم ويؤتي لكم ای مؤمنان اگر شما از خدا بترسید برای شما فرقانی فراهم میگرداند که با آن میان حق و باطل فرق کنید و گناهان شما را از شما می و خداوند صاحب فضل بزرگ است و از یمکنه کالذین کفرون یزدیدوک او یکسلوک او مخرجوک و یمکنون و الله والله خیر ناکریم و بیاد آر وقتی را که کفار به تو دفیسه میچیدند تا ترا محبوظ کنند یا ترا بکشند یا ترا از مکسه معظمه بیرون کنند اشان چاره می اندیشیدند یعنی تدبیر میکردند، و خداوند نیز تدبیر میکرد، و خداوند بهترین تدبیر کنندگانه و ایزا لو و چون اوغاز ما به ایشان خوانده شود میگویند ما بیگمان این را قبلا شنیده ایم اگر ما میخواستیم کلمات مثل آن را میگفتیم این نیست مگر افسانه هاوگه پیشینیان امکان ها ها هو الحق من عندی که فا امقر علینا حجاغتا من السماء او اقتناد عباد الیم بیا دارید وقتی را که ایشان گفتند باب خدا گفت همان اگر این حق از جانب تو پس بر ما از آسمان سنگ ببارند یا بر ما عذاب در نافت بفرسد. و مکن اللهم عذیبهم و انت فیهم و مکن اللهم عذیبهم و و خداوند هرگز ایشان را عذاب نمی کند تا زمانی که تو در میان ایشان باشی و خداوند هرگز ایشان را عذاب نمی تا ایشان آمرزش بخواهند و ما الا الله وهم هم عن المسجد الحرام و ما کانو اولیاء با چرا خداوند ایشان را عذاب نکند در حالی که از مسجد حرام مردم را باز می دارند و ایشان سرپرست آن هم نیستند نیست سرپرست مسجد حرام مگر فرهیزگاران اما بیشتر ایشان نمی دانند. اما كان قلت عند البيت اشان در برابر خانه کعبه غیر سفیر زدن و بحث زدن چیز دیگری نبود فسعتاب را به سبب کافر بودن خیش بتشيد إن الذين كفروا يتقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيتقون آثم متكون عليهم حسرة ثم نقولون والذين كفروا بیگمان آن هایی که کافرند دارایی خود را خرج می کنند تا مردم را از راک خدا باز دارند ایشان مال خود را هم سب خواهند کرد و سپس بر ایشان مایه حسرتی خواهد بود و بعد از آن مغلوب می کردند کسانی که کافر شدند به سوی دوزخ حشر می شوند ليميد الله القبيث من الطيب ويجعل القبيث بعضه على بعض فيغمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاتلين تا خداوند مردم ناپاک را از مردم پاکیزه جدا سازد و ناپاکان را بعضی بر بعضی دیگر روی هم بگذارد و همه ایشان را انباشته سازد و آنگاه به دو دوزخ کند هم ایشانند زیانکار كل با کافران بگو اگر اخنون هم از کفر خیش بازیستند گذشته برایشان آمر زیاده می شود ولی اگر با کفر خیش اصرار ورزند و به جنگ بازگردند سرنوشت پیشین یا شان جاری شده و قاتلهم حتی نبودند فدنتهم و یکون الزین کلهم للا فان تحس ان الله ما عملون باشید با این بچنج اگر مدید تا وقت باقی نماند و دین کاملاً از آن خدا باشد. اگر ایشان از اعمال نیکو خیش دست کشند پس خداوند و آن چی میکنند بینات و و با اگر از قبول حق رو بگردانند پس بدانید که بیگمان خداوند کارساز شماست چه خوب کارسازی و چه خوب مددگاری بدانی ترگونه غنیمتی به شما رسد یک بر پنجن آن برای خدا و برای پیامبر و برای زلقربا و یکیمان و مسکینان و واماندگان در راه است اگر شما به خدا به آنچه بربندهی خود در روز جدایی حق از باطل روز رویارویی دو قدرت نازل کردین ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیزی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 ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفروضًا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيى عن بينه وإن الله لسميعٌ عليم. بياد <تصفيق> و ایشان به طرف دو سرد و کاروان پایین تر از شما و اگر شما با یکدیگر و وعده هم برای رو در رویی می کردید یقینا در ایفای وعده خود خلاف می ولی با هم رو برو شدید تا خداوند کاری را که شدنی بود به انجام رساند تا کسی که حلاف می شود به دلیل روشن حلاف شود و کتی هم که زنده می ماند، به دلیل روشنی زنده بماند بی و بیگمان خداوند شنوا و دانا از که الله بیمنامی که قلیلا ولو اراک هم کثیرا لفتیلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم اینهو علمون بی ذات خدود در آر وقت را که خداوند در خواب ایشان را به تو کم نشان داد اگر ایشان را به شما بسیار می نمود بیگمان سست می شدید و در کار جهاد منازعه می کردید ولی خداوند شما را حفظ کرد واقعا خداوند براز درون فینه ها آگاه وَإِذْ يُرِيكُمُ إِذْ تَلْقَؤُونَ فِئَةً أَعْرِضُكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّفُ عَنكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّكِينَةِ حَتَّىٰ تَفْرَحُوا بِنَصْرِ اللَّهِ ۗ وَيُنَجِّي باید دارید وقتی را که به ایشان روبرو شدید، آنها را به چشم شما هم نشان داد و شما را در چشم های ایشان کم جلو نمود تا خداوند کاری را که شدنی بود، به انجام رساند و همه ی کارها به با خداوند باعث می‌شدند. یا ای الذین اذا لقیتم فَاتَّقُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ای مؤمنان چون با گروه برای جنگ روبرو شدید پس سباقت بگیرید و خداوند را زیاد یاد کنید تا باشد که رستگار شوید و اقیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفکروا و تذهب ریحكم و اصبروا این اللهم اقصادید در با خدبند و با پوامبر او را فرمان برید و باید دیگر مناطع مکنید تا ما با داساس شوید و نیروی مقاومت شما از دن برابد و باوجات شکی باوی وسید بیگمان خدا با باو شکی باویان. ولا تكونوا الذين خرجوا من ديارهم بطرا آن الناس ويصدون عن سبيل الله و مانند کسانی مباشید ما که با سرکشی و خودنمایی به مردم از خانه های خود بیرون شدند و مردم را از خدا خداوند باز می داشتند و خداوند به آنچه می کنند فراگیرنده وَإِذَيَّنَ لَوْ مُسْتَيْطَامٌ أَمَّا لَهُمْ, لهم وَقَالُوا لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ نَنْتَصِرُ وَإِنِّي جَاعِلٌ لَّكُمْ طَلَمَّا تَرَاءَتْ فِي أَسَانِكَ فَاعْلَا عَصَبًا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وقال اني بريء منكم انني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله تريد العقاب بطي ازاري بخيرا كردار گناه آلودشان را به آن ها و گفت: امروز به شما هیچ از مردم غارب نمی شود و من بیگمان به کنار شما جم. اما همین که آن دو گروه با هم روبرو شدند به عقب برگشت. و گفت: بیگمان من از شما بیزارم. یقینا من چیزی را می بینم که شما نمی بینید. بیگمان من از خدام میترسم و خداوند سخت عذاب کننده. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فؤائلا هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم بهادرخترا كه منافقان بانان كه در دلهايشند بموريس ني گفتند اینها را دینشان فریب داده است با کسی که به خدا توکل کند پس بیگمان گمان خداوند عزیز و با حکمت است قلن و ترو ان يتوفى الذين كفروا ملائكه يضربون وجوههم وايدارهم وبث عذاب الحریق و اگر فرشتگان را ببینی به هنگامی که روح کافران را میگیرند و بر روحا و پشتهایشان می در حالی که به ایشان می گوگند عذاب آتش سوطان را بچشید بما قدمت ان الله من این از به اعمال که دست های که ما اسپیش فرساده و خدا هرگز ببندند تام کار نی. کذب <تصفح> آلیل عون و الذين من قبلهم کفرن با آیات الله فاخذهم الله بذنوبهم. این الله قوی درست مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند از آویات خداوند انکار کردند و از ایشان را به گناهانشان گرفت بیگمان، خداوند، قوی و سخت عذاب کننده ذلك بأن الله لم يقم غنيا نعمة أنعمها على قوم حتى يغنو ما في لم يَكُنُ غَيِّرَ النِّمَّةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا وَأَنَّ این از سبب است که خداوند هرگز نعمتی را که به قوم ارزانی کند تغییر نمیده دهد تا آنکه که ایشان چیزی را که در نهاد خیش دارند تغییر ندهند و حقا که خدا بند شنبه و دانا کذب آلی العون والذین بوقبلهم کذبوا با آیات ربهم فأهلکنهم بذنوبهم و اغرقنا آلی العون درست مانند روش فرعونیان با کسانی که پیش از ایشان بودند او جا که پربرگار خش را تکذیب کردند پس ایشان را در اثر گناهانشان حلال کردیم و قوم فرعون را غرق ساختیم و همه ستمگاه بودند این بگمان بترین جنب دگان در نزد خدا وند کسانی اند که کافر شدند پس ایشان ایمان نمی آورند. آلذین عهد منهم ثم يَلُقُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ وهم لا يستقون كفانك از آنها عهد گرفتید سپس در هر بار خود را می و ایشان از خدا نمی ترسند في الحرب فجرر بهم من خلفهم لعلهم لهم اگر ایشان را در جنگ دریافتی، پس به از بین بردن ایشان کسانی را که در عقبشان قرار دارند متفرق بساز تا باشد شد که پند بکیرند ما تخافن من قوم نعم والله اگر از گروه بین خیانت داشتی عادلانه پیمانشان را به سویشان بیانداخت خداوند هرگز خیانتکاران را دوست ندارد ولا يحتسبن الذين كفروا سبك ان لهم لا کافران نپن دارند که از مسلمانان پیش دستی کردند ایشان هرگز مسلمانان را آجز ساخته نمیتوانند و اعزون هم من تطعكم من قوت و من رباق الخیل ترهیبون بهی عدو والله و و يُحِبُّ نَبِيُّهُ يَعِدُهُ وَاللَّهُ وَاعِدٌ وَكُنْ وَاثِقًا مِنْ ذُونِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ فِي تَغْيِيرٍ در برابر دشمنان آنچه توانایی دارید از نیرو آماده ساسید و همچنین اسبهای ورسیده برای میدان نبرد تا با وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسانید و همچنین گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمیشناسید و خدا می و هرچه در راست خدا و تقویت بنیه دفاعی اسلام انفاق کنید به با شما باد کردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد و این جنحو لیستلم و توسکل الله انهو هو السميع العليم و اگر تمایل به صحب نشان دهند تو نیز از در صحب دارد و بر خدا تکیه کن که او شنبا وهدانا و این یریدو ان یخدعوک فا این الله هو الذي أن يَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ و اگر بخواهند تو را فرید دهند خدا براوی تو کافی و همان که تو را با خود و مؤمنان تقویت کرد و الفت بین لو في الأرض جميعا ما الله ألف عزيز با دلهایشان را به هم الفت داد اگر تو تمام آن را که در روی زمین است هم خرج می کردی شان را به هم الفت داده نمی تبانستی مگر خدا بند بینشان الفت داد حقا که هم اوست ذات عزیز و با, با فکمت یا ایوانم یحفظ که الله و من تبعه کنم مؤمنین ای پیانبر خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می برای موجت تو کافی یا ایوانم یحفظ المؤمنین على القتال ای کمین کم اشرقان قاضون یغلب میآتی و ای کمین قوم مؤمنان را به جنگ برنگید اگر از شما 20 تن صابر و با باشند بر دوست تن غالب می شوند اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غالب می و به این سبب که ایشان مردمانی اند که نمیفهمند الان الله عنكم و علم فيكم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 از شما تخفیف داد و دانست که در شما زعفی وجود دارد این هرگاه یک نفر با استقامت از شما باشند بر دو صد نفر پیروز می شوند و اگر یک هزار نفر باشند بر دو هزار نفر با فرمان خدا غلب خواهند کرد و خدا با تابرانه ما كان لنا دين ان يكون لهم اسراحه تسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم بروجة پیغمبرس زاوار نیست که اسيران جنگي داشته باشند تا در زمین نیرو من است شما مال و مسائل دنیا را میخواهید و خدا آخرت را میخواهد و خدا بند قادر و با بهکمته. لو لا من الله فيما اخذتم عذاب عظيم. اگر فرمان سابق از جانب خدا نمی بود. که بدون ابلاغ امتی را جزا نمیدهد و شما در برابر جزیه که گرفتید عذاب شدید میرسید فا قلو مما غنیمتم حلالا طیبا واتقل الله این الله اکنون ازان چه غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا بپرهیزید خدا پند آمرتنده و است. یا ایوان نبی كل من في ایدیکم من الاسرائن یعلم الله في قلوبكم خیرا ای علم الله في قلوبكم خیرن يؤتكم خیرن مما اخذ منكم لكم والله غفور ای پیانبر با آنانی که در دست شما اثیران بگو اگر خداوند در دلهای شما خیلی را در یابد در برابر آنچه از شما گرفته شده چیزهای بهتر برای شما میدهد و شما را می آمرزد و خداوند آمرزنده زنده مهربان است من منهم والله اما اگر ایشان اراضهی خیانت را با تو داشته باشند پس بیگمان ایشان پیش از این به خدا هم خیانت کردند پس شما را بر ایشان مسلط ساخت و خداوند دانا و با حکمت است اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَو بِالَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حتى نعادي وإن استووا صوكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقاً والله بما تملون رقيب <تصفيق> أنا هاك إيمان أفرد عند وبما و با اموال و جانهای خود در راه راک جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند اولیاء یعنی یاران و مسئولان و مدافعان یفتی گرند و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند هیچ گونه و تعهد و مسئولیت در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند و تنها اگر از شما در حفظ دین خود یاری طلبند بر شماست که آنها را یاری کنید جز بر ضد گروهی که میان شما و آنها پیمان ترک مخاصم است و خداوند به آنچه عمل میکنید بیناس وال و که كافر شدند اولیا به یاران و مدافعان یکدیگراند اگر این دستور را انجام ندهید فتنه و فساد عظیم در زمین روی میدهد لهم و رزق کریم که ایمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد در راهی خدا کردند و آنهایی که پناه دادند و یاری کردند آنان مؤمنان حقیقی هند برای آنها آمرزش و رحمت خدا و روزی شای سیست والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجادوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحاء لبعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء معين و آنانی که بعدا ایمان آوردند و هجرت نمودند و با شما یکجا جهاد کردند پس ایشان نیز از شما زند. و خویشاوندان در احکام خدا بعضی بر دیگر سزاواترند بیگمان خداوند به هر چیز دانا